زندگی آرام اینطور که معلوم شد مخفیانه وارد این زندگی شدن خیلی آسان بود در این زندگی خواب خوبی هم داشت و تا ساعت یک رو هشت که صدای زنگ ساعت به گوشش رسید از خواب بیدار نشد با ماشین هیوندای هی کهنه که بوی سگ و بیسکویت میداد و همه خورده ریزه غذا ریخته بود، از جلوی بیمارستان و مرکز ورزشی شهر گذشت و آن را در پارکینگ کوچک بیرون ساختمان خاک سری رنگ مدرن و یک طبقه پناهگاه حیوانات پارک کرد. صبحش را صرف غذا دادن و گرداندن سگ ها کرد. به این خاطر آنقدر ساده وارد این زندگی شد که زنی مهربان و خاکی با موی فره قهوه‌ای رنگ و لحجه یورک شایری به اسم پولین به استقبالش آمده و گفته بود که نورا به جای پناهگاه گربه ها در پناهگاه سگ‌ها کار خواهد کرد. به همین خاطر نورا بحانه واقعی داشت و می با خیال راحت سردرگم گم به نظر برسد و بپرسد که باید چه کار کند. مشکل نشناختن اطرافیان را هم نداشت، چون همه کارکنان برچسب اسم داشتند. نورا سگ بولماستیفی را که به تازگی به پناهگاه آورده شده بود در حیات پشت پناهگاه گرداند. پولین به او گفت که صاحب بولماستیف بیچاره رفتار بدی با او داشته. چند جای زخم کوچک و دایره ای را روی بدن سگ نشانش داد. جای سختگی سیگاره نورا دوست داشت در جهانی خالی از هر گونه شرارت و ظلم زندگی کند اما متاسفانه تمام دنیاهایی که میتوانست انتخاب کند پر از انسان بودند اسم بول ماستیف سالی بود از همه چیز میترسید سایه خودش، بوته ها، سگ های دیگر، پاهای نورا، چمن، هوا اما خیلی زود از نورا خوشش آمد و حتی اجازه داد خیلی کوتاه شکمش را بمالد اندکی بعد نورا کمک کرد لانه سک های را تمیز کنند. حدس میزد به این خاطر قفص سک را لانه صدا میکردند کردند که حس بهتری داشت چون قفس مناسبتر به نظر می یک سگ گله آلمانی سپا به اسم دیزل هم در پناهگاه بود که ظاهراً مدت زیادی را آنجا سر کرده بود. وقتی با هم دیگر بازی می کردند، نورا متوجه شد دیزل با های خوب و سریعی دارد و تقریبا هر بار می تواند توب را با دهانش بگیرد. نورا از این زندگی خوشش می آمد. یا در واقع اگر می خواست دقیق تر بگوید، از نورای این زندگی خوشش می آمد. از حالت حرف زدن بقیه با خودش می توانست بفهمد آدمی است. آدم خوبی بودن، حس دلچسب و آرامش بخشی داشت. ذهنش هم متفاوت بود، در این زندگی زیاد فکر میکرد. اما افکارش مهربان و آرام بودند. آرتور شپنهاور فیلسوف در یکی از دوره های آرام و پر لطافت زندگیش نوشته بود. ترحم و دلسوزی پایی اصول اخلاقی است. شاید پایی زندگی هم همین بود. مردی به نام دیلن در پناهگاه کار میکرد که رابطه ای سمیمی با همه ی سکا داشته. تقریبا همسن نورا یا شاید هم جوانتر بود رفتار مهربان و آرام و قمزده ای داشت موی بلندش که شباهت زیادی به موی موج سواران داشت همرنگ موی سگ های رتریور بود موقع نهار آمد و کنار نورا روی نیمکت رو به محوطه نشست با سر به ظرف نهار نورا اشاره کرد و مهربانانه پرسید امروز غذاش چیه خود نورا هم واقعا نمیدانست چه غذایی دارد آن رو صبح وقتی در پوشیده از آهنروبا و تقویم یخچالش را باز کرده بود، ظرف غذا را آماده و بسته بندی شده دیده بود. در ظرف را باز کرد و یک ساندویچ پنیر و مارمیت و یک بسته چیپس سرک نمکی در آن دید. آسمان کم کم تاریک و باد شدید شد. نورا گفت، اه لعنتی، میخواد بارون بیاد. شاید، ولی ساک هنوز توی قفصشون هستن. چی؟ وقتی قرار بارون بیاد سگابوشو بوش حس میکنن واسه همین همیشه قبلش میرن داخل بالیست این که میتونن با بینیشون آینده رو پیش بینی کنن؟ نورا گفت چرا خیلی باحاله نورا گازی به ساندویچش زد بعد دیلن بازویش را دور رشانه او گذاشت نورا بالا پرید گفت چیکار؟ دیلن شدیدن شرمنده به نظر میرسید انگار که ترسیده بود میخوام، شونت چیزی شد دردت گرفت نه من فقط من نه نه خوبم نورا فهمید که دیلن دوست پسرش هست و در دوران راهنمایی هم مدرسه ای بودهاند مدرسه هیزلدین دیلن هم دو سال از او کوچکتر بود نورا به خاطر داشت آن روزی که توی کتابخانه مدرسه بود و پدرش فوت کرد، پسری موبور و کوچکتر از او دوان دوان از پشت پنجری باران زده گذشت. یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش میدوید آن پسر همان دیلن بود. نورا نسبتاً از او خوشش بیامد، اما فقط از دور. هیچ وقت هم از نزدیک او را نشناخت یا حتی به او فکر نکرد. دیلن پرسید، حالت خوب ن آره، فقط، آره، خوبم نورا دوباره نشست، اما کمی فاصله بینشان روی نیمکت گذاشت دیلن هیچ مشکل خاصی نداشت مهربان بود، نورا هم مطمئن بود که در این زندگی واقعا از دیلن خوشش میآید شاید حتی عاشقش باشد اما وارد شدن به یک زندگی به آن معنا نیست که احساسات آن زندگی را هم کسب می کنی رسی، میز رستوران جینه رو رزرو کردی؟ جینو همان رستوران ایتالیایی نورا در دوران نوجوانی با آنجا رفته بود. تعجب می کرد که رستوران هنوز داگر بود. چی؟ جینو همون پیزا فروشیه و گفتی یه جورایی مدیر رستوران رو می شناسی؟ آره بابا می شنختش. خب زنگ زدی؟ نورا به دروغ گفت آره اما رستوران کاملا رزرو بود. وسط هفته؟ عجیبه، حیف شد، آشق پیتزام و پاستا و لازانیا و... لرا گفت، درسته، آره، قبول دارم، کاملا قبول دارم، میدونم عجیب بود، اما چندتایی تعداد بالا داشتن. دیلن به همین سرعت گوشیش را بیرون آورده بود، اشتیاق زیادی داشت. زنگ میزانم لاکانتینا، میشناسیش که همون رستوران مکزیکیه. کلی غذای مخصوص گیاه خارانم داره، من که مکزیکی دوست دارم، تو چی؟ نورا جز حرفهای نچندان مسحور کننده دیلن، دلیل منطقی دیگری برای رستوران رفتن همراه او نداشت. در مقایسه با ساندویچی هم که الان داشت میخورد و وضعیت بقیه غذاهای توی یخچالش، غذای مکزیکی خوشمزه به نظر میرسید. بنابراین دیلن برایشان میزی رزرو کرد و در حالی که سگ‌ها توی ساختمان پشت سرشان واق واق می کردند، به صحبت ادامه دادند. در طول گفتگویشان نورا فهمید که در فکر همخانه شدن هستند. دیلن گفت، میتونیم با هم میخونه آخری جاده رو ببینیم؟ درا درست به حرفایش گوش نمیکرد. برای همین گفت، چی هست؟ متوجه شد که دیلن خجالتی است و تمایل چندانی به برقراری ارتباط چشمی ندارد. با مهزه بود. میشناسیش که همون فیلم رایان بیلی که میخواستی ببینی، تریلرش رو با هم دیدیم؟ گفتی میگن خنده داره و منم یکم سرچ کردم و دیدم توی سایت راتن تومیتوز از صد امتیاز 86 گرفته. توی نتفلیکس هم هست بنابراین نورا به این فکر افتاد که اگر برای دیلن تعریف کند در یکی از زندگی‌هایش خواننده اصلی گروه پاپ و راکی موفق و بین است و مدتی با رایان بیلی دوست بوده و بعد خودش تصمیم گرفته رابطهشان را قطع کند، دیلن حرفش را باور می کند یا نه؟ نورا گفت خوبه و پاکت خالی چیپس را تماشا کرد که روی چمنهای کمپشت محووته به هوا بلند شد. دیلن سری از روی نیمکت بلند شد. پاکت را گرفت و در سطل آشخال کنار نیمکت انداخت. لبخند زنان و سلانه سلانه به طرف نیمکت برگشت. نورا درک می کرد که نورایی این زندگی در دیلن چه می دیده؟ در رفتارش خلوص خاصی بود. انگار که خودش هم یک سگ بود. وقتی این دنیا سگ دارد، چرا باید دنیای دیگری خواست رستوران در خیابان کسل بود و کمی با مغازه تئوری ریسمان فاصله داشت بنابراین برای رسیدن به آن باید قدم زنان از جلوی مغازه میگذشتند حس آشنای این پیاده روی برای نورا عجیب بود وقتی به مغازه رسید متوجه شد که تغییری به وجود آمده پشت ویترین هیچ گیتاری نبود در واقع پشت ویترین هیچ چیز نبود جز یک كاغذا چهار قدیمی و رنگ رو رفته که به سمت داخلی شیشه چسبیده بود لورا دستخط نیل را شناخت افسوس که تئوری ریسمان دیگر قادر به ماندن در این ملک نیست به علت افزایش اجاره خیلی ساده دیگر دخل و خرج مان نمیخواند از تمام مشتریان وفادار متشکرم اشکالی نداره خودتون رو مقصر ندونین میتونین راه خودتون رو برین خدا میدونه اگه شما نبودین ما چی میشدیم دیلن از نوشته روی کاغذ خوشش آمده بود گفت آها فهمیدم چه آهنگیه ولحسه بعد اسم دیلن رو به خاطر باب دیلن روی من گذاشتن قبلا بهت گفته بودم یادم نمیاد میشناسیش که همون موسیقی دانه آره قبلا اسم باب دیلن رو شنیدم دیلن اسم خوهر بزرگترم هم سوزانه از روی اون آهنگ لئونارد کوهن دیلن از نورا پرسید تا حالا رفته بودی توی مغازهش به نظر می اومد مغازه خوبی باشه یکی دو بار حدس می زدم خودت هم به موسیقی علاقه داری دیگه قبلاً پیانو می مگه نه؟ قبلاً. آره کیبورد می زدم یکم نورا متوجه شد که اعلامیه نیل قدیمی است یاد حرف او افتاد نمیتونم بهت حقوق بدم و بذارم مشتری ها رو با قیافه افسردت فراری بدی. حالا که معلوم شد مشکل از قیافه ی من نبوده نیل. به پیاد ادامه دادند. دیلن، به جهانهای موازی عقیده داری؟ دیلن شانه بالا انداخت. فکر کنم. به نظرت، توی یه زندگی دیگه داری چیکار کار میکنی؟ فکر میکنی دنیای خوبی باشه یا ترجیح میدی توی دنیایی باشی که بتفورد رو ترک کردی؟ نه واقعا همینجا خوشحالم. وقتی این دنیا سگ داره چرا باید دنیای دیگه‌ای بخوام؟ های اینجا هم مثل سگای لندنن. میدونی که اونجا خونه گرفته بودم. رفته بودم دانشگاه گلاسگو تا دامپزشکی بخونم. یه هم اونجا بودم ولی دلم خیلی واسه سگام تنگ شده بود. بعد بابام کارشو از دست داد و دیگه از پس مخارج زندگیمون توی لندن بر نمی اومد. خلاصه اینطوری شد که دامپزشک نشدم واقعا هم دوست داشتم دامپزشک بشم. اما پشیمون نیستم زندگی خوبی دارم دوستای خوبی دارم سگهام رو هم دارم نورا لبخند زد از دیلن خوشش میآمد هرچند که شک داشت مثل نورای این دنیا بتواند دوستش داشته باشد دیلن انسان خوبی است و انسانهای خوب بسیار کمیابند وقتی به رستوران رسیدند مردی قد بلند و تیره مو را دیدند که لباس ورزشی به تن داشت و به سمت آنها میدوید یک لحظه طول کشید تا نورا اش را بشناسد همان عشی که جراح بود همان عشی که مشتری مغازه تئوری ریسمان بود و یک بار نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود همان عشی که در بیمارستان او را آرام کرده بود همان اشی که همین دیشب در دنیای دیگری در خانهاش را زده بود تا به او بگوید ولتر مرده. وقت زیادی از رخ دادن این اتفاق نمیگذشت اما البته فقط خاطری در ذهن خود نورا بود. اش مشخصا داشت برای مسابقه نیمه ماراتن روز یکشنبه تمرین میکرد. دلیلی نداشت که نورا فکر کند اش این دنیا با اش زندگی اصلیش فرق چندانی دارد. البته با این تفاوت که احتمالاً دیشب جسد ولتر را پیدا نکرده است یا شاید هم جسد را پیدا کرده اما اسم ولتر در این دنیا ولتر نیست. نورا یک لحظه فراموش کرد در کدام دنیاست و گفت: سلام. اش هم لبخندش را پاسخ داد ولی لبخندش سردرگم بود. سردرگم اما مهربانانه که این خودش بیشتر باعث خجالت نورا شد چون در این زندگی هیچ وقت اش در خانه‌اش را نزده او را به صرف قهوه دعوت نکرده و از او کتاب موسیقی سایمون و گارفانکل نخریده است دیلن پرسید کی بود؟ یه نفر که توی یه زندگی دیگه میشناختمش به نظر میآمد دیلن گیت شده باشد اما بعد مثل سگی که قطرات باران را از خودش میتکاند سردر گمیش را پستد و دور انداخت رسیدند شام با دیله لکانتینا تایی آن همه سال تغییر چندانی نکرده بود. نورا یاد چند سال پیش افتاد که وقتی دن برای نخستین بار به بتفورد آمده بود او را به لکانتینا برد. پشت میزی در گوشه رستوران نشسته بودند. زیادی مارگاریتا خورده و درباره آینده مشترکشان حرف زده بودند. نخستین بار بود که دن درباره رؤیای میخانی روستاییش برای او میگفت. قرار بود مدتی بعد با هم دیگر همخانه شوند. درست همانطور که حالا نورا و دیلن قرار است همخانه شوند. حالا که نورا یادش می در آن موقع با گارسون خیلی بدرفتاری رفتاری و نورا سعی کرده بود با لبخندهای متعدد و بیش از حد رفتار بد او را جبران کند. یکی از قوانین زندگی همین بود. هرگز نباید به کسی که مشتاقانه با کارگران خدماتی کم درآمد بدرفتاری می کند اعتماد کنید. دن هم در این آزمون و خیلی آزمون های دیگر شکست خورده بود. اما خوب نورا باید اعتراف می کرد که در هر صورت چندان علاقهی به بازگشت به لاکانتینا نداشت. دیلن نگاهی به دکوراسیون قرمز و زرد شلوغ و پرزرق و برق دوروبرش انداخت و گفت آشق این رستورانم. نراه در دل به این فکر کرد که اصلا مگر جایی روی زمین هست که دیلن دوستش نداشته باشد یا دست کم توانایی دوست داشتنش را نداشته باشد. به دیلن می آمد آدمی باشد که به تواند در صحرایی نزدیک چرنوبیل بنشیند و مناظر زیبای طبیعیش را تحسین کند. حین خوردن تاکوی لوبیای سیاه درباره باره و مدرسه حرف زدند. دیلن دو سال کوچکتر از نورا بود و او را در کل به عنوان دختری که شنایش خوب است به یاد میآورد. دیلن حتی مراسمی را که مدرسه برای نورا برگزار کرد به خاطر داشت. البته نورا مدتها پیش سعی کرده بود خاطره آن روز را سرکوب و فراموش کند. در مراسم از نورا خواسته بودند روی صحنه بیاید. بعد او را نماینده استثنایی مدرسه هیزلدین معرفی کرده و تقدیرنامه‌ای به او داده بودند. حالا که به آن روز فکر میگرد، احتمالا همان مراسم لحظه ای بود که دورا تصمیم گرفت شنا را کنار بگذارد. همان لحظه ای که فهمید نمیتواند با دوستانش راحت باشد و بعد از آن در تمام دوران مدرسه به هاشی شد. دیلن گفت، توی زنگوی تفری تو رو توی کتابخونه میدیدم و با یاداوریش لبخند زد. یادمه با کتابدار اون موقعمون چطنج بازی میکردی، اسمش چی بود؟ نورا گفت، خانم علمه، آره، خانم علمه، و بعد حرفی تکان دهنده زد، اون روز دیدمش، واقعا، آره، توی خیابون شیکسپیر با یکی دیگه بود که یونیفرمی شبیه پرستارو پوشیده بود، فکر کنم اومده بودن پیاد روی، اون مقام دیگه داشتن برمیگشتن خونه سالمندان، خیلی ضعیف و شکننده به نظر میرسید، خیلی پیر، به دلیلی نامشخص. دورا همیشه اینطور تصور کرده بود که خانم علم سالها پیش فوت کرده و دیدن او در کتابخانه هم باعث شده بود بیشتر این فکر را باور کند. چون دقیقا شبیه همان خانم علمی بود که در دوران مدرسه می شناخته. مثل مگسی که درون كهربا گیر افتاده باشد. وای نه، خانم علم بیچاره. خیلی دوسش داشتم. ی آخر جاده بعد از شام نورا به خانه دیلن رفت تا با همدیگر فیلم رایان بیلی را ببینند یک بطری نیم ی نوشیدنی هم داشتند که رستوران اجازه داده بود با خودشان ببرند نورا با این بهانه خودش را راضی به رفتن به خانه او کرد که دیلن مهربان و راستگوست و اینطوری بدون آنکه تلاش زیادی بکند اطلاعات زیادی درباره زندگیشان به او خواهد داد دیلن در خانه یک از خانه های ردیف به ردیف و شبیه همدیگر بلوار هاکسلی زندگی می که از مادرش به ارز برده بود. خانه به خاطر تعداد زیاد سک های داخلش حتی کوچکتر هم به نظر می رسید. نورا پنج تایشان را می دید. اما ممکن بود تعداد بیشتری هم در طبقه بالا باشند. همیشه فکر می کرد از بوی سگ خوشش می آید. اما حالا ناگهان حس می کرد این علاقش به بوی سگ هم حدی دارد روی مبلش است چیزی را زیر پایش حس کرد حلقه پلاستیکی که سک ها گازش می گرفتند آن را میان بقیه اسباب بازی های گاز گرفتنی سک ها روی فرش گذاشت استخوان اسباب بازی توپه زرد فومی که چند کش با گاز سک ها کنده شده بود و اسباب بازی نرمی که سک ها کرده بودند یک سگ چیواوا که آب مرواری هم داشت سعی کرد به پای راست او بچسبد و کارش را بکند. دیلن گفت: بیا برو پدرو. خندید و سگ کوچک را از نورا جدا کرد. سگ تیکل دیگری که از نژاد نیوفاندلند و گردویی رنگ بود، کنار نورا روی مبل نشسته بود و با زبان بزرگ و دمپایی مانندش گوش او را لیس میزد که این یعنی دیلن باید روی زمین مینشست می‌خوای روی مبل بشینی؟ نه روی زمین خوبه نورا اصراری نکرد. در واقع از این بابت خوشحال بود اینطوری تماشای میخانهٔ آخری جاده هم آسانتر میشد و موقعیت معذب ای پیش نمیآمد آمد. نیوفاندلند هم دست از لیسیدن گوش برداشت و سرش را روی زانوی نورا گذاشت نورا در این لحظه احساس میکرد خب نمیشد دقیقا گفت شاده است اما افسرده هم نبود با این حال همزمان که رایان بیلی را تماشا می کرد که به عشق سینماییش می گفت زندگی رو باید تجربه کرد غنده اصلا، دیلن هم به او می گفت که قصد دارد بگذارد یک سگ دیگر هم توی تختش بخوابد. کل شب گریه میکنه دلش واسه باباش تنگ میشه. نورا به این درک رسید که خیلی هم از این زندگی خوشش نمیآید. در ضمن حق دیلن بود که با آن نورای دیگر باشد همان نورایی که توانسته بود عاشقش بشود. حس تازه‌ای به نورا دست داد. حس اینکه داشت جای کسی را میگرفت. با درک اینکه در این زندگی تحملش در برابر الکل زیاده است، برای خودش کمی دیگر نوشیدنی ریخت. نوشیدنی زینفاندل ارزان قیمتی از ایالت کالیفرنیا بود. به برچسب پشت بطری خیره شد. به دلیلی نامعلوم روی برچسب بیوگرافی کوتاهی روی مرچسب بیوگرافی کوتاهی از زن و مردی به اسم جنین و ترن استورنتون نوشته شده بود که مالکان تاکستان سازنده این نوشیدنی بودند. لورا جمله آخر بیوگرافی را خواند. وقتی تازه ازدواج کرده بودیم، همیشه رویای این رو داشتیم که روزی تاکستان خودمون رو داشته باشیم. حالا اون رؤیا رو به حقیقت تبدیل کردیم. اینجا در دره درای کریک زندگی ما به خوشمزگی یک لیوان زینفاندل را اندکی سگ بزرگی را نوازش کرد که اندکی پیش داشت او را لیست می زد. در فاصله کمی از پیشانی پهن و گرم نیوفانلند نجوا کرد. خود حافظ. بعد دیلن و سگهایش را ترک کرد.